وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جعل هذا البلد آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصناع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وأهلي والسحبي أجمعين أما بعد سو من جلسيها سوى موضعين موضعين موضعين عقيدة درس عقيدة بحث ایمان اسلام بعد از اون بحث ایمان به خداوند، حال ایمانی که ما به خداوند داشته باشیم و ما ملزم به اون هستیم که باید نسبت به خداوند اعتقاد داشته باشیم باید بررسیش بکنیم. گفتیم خداوند یک تاست. گفتیم که خداشناسی شناسیمون این میگه خود جز خدا خدای دیگر نیست. حال این خداشناس ایمان ما لازمش چی هست؟ ما باید به چی اعتقاد داشته باشیم داباره خداوند؟ بحث توحید میاد ایمان به اینکه خداوند یکتاست یعنی همون توحید توحید وحد ای وحد توفید یعنی یک تا قرار دادن یک چیز رو یکی قرار دادن خب چگونه خداوند رو یک تا قرار بدیم در چی خداوند رو یک تا قرار بدیم خداوند را یک قسمتش در افعال خودش توشید علمی هست که ما باید در افعال خودش خداوند را یک تا قرار, قرار بدیم یعنی اینکه باید اقرار داشته باشیم اعتقاد داشته باشیم به اینکه خداوند خالق تنهاست رازق تنهاست رزاقه و خداوند قادر فت... قدرت همه در دست خداونده و همچنین از دیدنش، از شنیدنش، از همه صفات خداوند که داره، از افعالی که داره، هیچ کس همتای خداوند نیست، هیچ کس مثل خدا نیست، خداوند یکتاست در افعالش، هیچ کس، ما میبینیم خدا هم میبیند، ولی دیدن ما مثل دیدن خداوند نیست، خداوند موچه ریز سیاه رنگ در شب تاریک، در دره روی روی سخریه سیاه رنگ او را میبیند. این دیدن با اون دیدنی که ما داریم فرق میکنه کنه. خداوند تمامی مخلوقات رو می بیند. پس خدا را یک تا قرار بدیم در افعالش. هیچ کس مثل خدا نیست در افعالش. در, در اون قسمان و صفاتش. یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودش میشه شه توشید علمی. این یک قسمتی که ما باید بهش باور داشته باشیم. اعتقاد داشته باشیم. که این خ... که خداوند ما یک تا هست در این مسئله. دوم توشید عملی هست که ما در افعال خودمون خدا را یکتا قرار بدیم خداوند ما در اعمال, اعمال ما یکتا باشه یعنی یکتا قرارش بدیم در اعمال ما خودمون. توحید علمی توشید عملی ایمان که به خدا داشته باشیم باید این دوتا را در بر بگیره. توشید علمی نسبت به افعال خدا یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودش و توشید عملی یک تا قرار دادن خداوند در افعال ما بندگان یعنی ما در افعالی که ما مکلف بهش هستیم باید خداوند را در اون افعال یک تا قرار بدیم بحث سوار شدن ماشین نیست بحث امور دنیا نیست که خدا را درش یک تا قرار بدیم اون افعالی که خداوند خاصه ما برای خودش انجام بدیم عبادت، طاعت، الا اون عبادت میخواد عبادت قلبی باشه عبادت بدنی باشه عبادت عبادت گفتاری باشه بحث ازگار باشه بحث دعا باشه تمامی اون عبادتها فقط باید خداوند رو در اون یکتا قرار بدیم اون چیزی که خداوند از من خواسته و قال ربكم مدعوني استجب لكم خداوند از ما خواسته که او را صدا بزنیم فریاد بزنیم دعا خواسته خداونده نباید کسی جز خدا را صدا بزنیم ما دعا دو نوع دعا داریم دعای مسألت داریم و دعای عبادت در هر دو تا باید خداوند را یکتا قرار بدیم خداوند که میفرماید ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا این دو تا را در بر میگیره بحث دو نوع عبادت را در بر میگیره بحث اون عبادت گفتاری که دعا هست و عبادت بدنی که نماز هست و ان المساجد لله همونطور که مسجد مال خداونده نماز فقط برای خداوند میخونی سر به سجده برای خدا میزنید رکو برای خدا میخونی انجام میدید همونطورم در دعاتون در فریادتون در گفتارتون خدا را فقط صدا بزنید و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا کسی برای خدا شریک قائل نشو یعنی کسی جز خدا را صدا نزن نه اینکه انسان مادرش و پدرش یا دوست و رفیقش وقتی که در مصیبتی واقع میشه صدا نزنه که او را نجات بدن نه بحث این نیست بحث در اینه که اون جایی که کسی جز خدا نمیشنبه اون جایی که کسی توانش نمیرسه که کمکش بکنه جز خدا بنده یکتا کسی دیگه شدی که خدا قرار نده برای خدا واسطه قرار نده نیاد از یک مخلوقی بخواهد که دای او را به پروردگار برسونه چون خداوند است که همه را میشنود همه را میشنود و همه جا را میبیند دیگه چه نیازی هست که انسان بت یا مرده یا کسی دیگر را صدا بزنه مگر اون کس میشنوه خیر خداوند برای اینکه این مسئله در ذهن ما جا بیفته چنین مثال میزند خداوند در قرآن میگوید ان الذين من دون الله ان من اونهایی که صدا میزنید به غیر از خداوند بندگانی مثل شما هستن در فل دستجیگوولککن ازشون بخواهید بحث اون مردده هایی که ما مثلا بالفرض او را صدا میزنیم آیا صدای ما را میشنند مثل خداوند؟ آیا بلفرز اگر بگیم که می آیا مثل خدا میشنند؟ آیا مثل خدا می بینن آیا مثل خدا ارحم اررحممر رحم دارن نسبت به ما آیا علم غیب دارن نسبت به آینده ای ما که دعای ما آیا به نفع ما هست یا نیست که استجابت بشه یا نشه؟ خیر ندارن به خاطر همین بعد از اینکه خداوند میاد میگوید که اونهایی که صدا میزنید بندگانی مثل خودتون هستن ضعیف هستن توان توان اجابت اون دعای شما رو ندارن میاد میویت اله‌م هم یمشون بها پا دارن که راه بر ازیرخاک مثال داره میزنه خداوند اون بنده ای که صداش میزنید پا داره ام لهم ایدن یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم اذان یسمعون بها داسدر چش دارن که ببینن ازیرخاک گوش دارن ازیرخاک از پشت من هاشو و کلام ندارن نمیتونن پس کسی را نباید جز خداوند بپرستیم باید خداوند را در پرستشمون یکتا قرار بدیم هم در دعامون هم در عبادتمون و ان المساجد دلیلله فلا تدعو مع الله احدا قسمت اول پس گفتیم دعای عبادت و قسمت دوم دعای مسئلت خدا را باید در این یکتا قرار بدیم ایا که نعبدو ایا یعنی فقط خداوند را را بپرستیم فقط را بپرستیم و فقط را صدا میزن این دو عبادتی که که شرع از من خاصه و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این که در ذهنمون شبه نیفته که دعا عبادت نیست دعا فقط صدا زدن و خاص طلبه رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرما الدعاء هو العباده دعا خود عبادت است یعنی اصل عبادت دعاست یعنی دعا عبادته نباید شما اون دعایی که از خدا میکنید در اون دعاتو نه کسی واسطه قرار بدید نه کسی دیگه رو فریاد بزنید خداوند همونطور که مورچه ریز سیاه رنگ را می‌بیند و صداش را میشنود و دعایش را مستجاب می‌کند دعای شما هم مستجاب میکن و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي خداوند میگوید من از شما خواستم و قال ربكم ادعوني استجب لكم پروردگار شما از شما خواسته که از او بخواهید ادعونی از من بخواهید تا استجابت بکنم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اونهایی که استکبار از عبادت من فقیه چه داره میگه؟ قسمت اولش دعاست، قسمت دومش داره میگه اونهایی که استقبال می عبادت است. عبادت چیه؟ قسمت اول اومد دعا، پس اینجا دعای عبادته. بحث اینه که در دعای مسئلت که, در... که خودش عبادته که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند الدعاء هو العبادة، خدا را درش یکتا قرار بدیم. کسی را جز خدا صدا نزنیم. پس خدا را باید یکتا قرار بدیم، معبودمون قرار بدیم، خداوند یکتاست. یکتاست در بحث علمی بودن و در بحث عبادت ماها خداوند ما, را، ما باید یکتا قرارش بدیم در خلق آفرینش و یکتا قرار بدیم در افعال ما فعل ما عبادته باید خداوند را یکتا قرار بدیم و این معنای صحیح کلمه لا اله الله هست که پیامبران خداوند به خاطر این کلمه فرستاده شدند اینه که ما خداوند معبود خودمون قرار بدیم و فقط او را بپرستیم خداوند در قرآن السبب خلقات الإنسان مجيدة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس را خلقات نكردان مجال براي عبادات بهمي تور خضابان مفرمي ولي بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واشتنب الطاقود إن معنى كلمة لا الله هست في عمبران براي عبادات خضابان براي إنك خضابان پرستش بشه بدوري استاقود بشه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون هیچ پیامبر نفرستید مگر اینکه جزمن معبودی نیست مرا بپرسید پس لا اله الا الله یعنی معبودی نیست که به حق برسیده بشه جز الله یعنی باید در عبادت فقط خداوند را بفر یعنی خداوند را فقط یک تا قرار درش قرار بدیم یک قسمتش بس بحث بحث عبادات قسمت دیگر از اون چیزی که خداوند را باید درش یک تا قرار بدیم برمیگرده به طاعت، اطاعت باید فقط فرمون خداوند بشیم در حلال و حرام یعنی فقط باید خداوند ازش بتلبیم یعنی فقط فقط خداوند فرمون بشیم یعنی از او فرمون بکنیم، از او اطاعت بکنیم مثلا وقتی خداوند بهمون میگه فلان فعل حرامه باید بپسیدیم چون خداوند گفته مشروب حرامه گوشت خوک حرامه گوشت سگ حرامه باید بگیم چشم چون تو خداوند گفتی من قبول دارم پس ما باید در عبادتیمون خدا یک یکتا قرار بدیم در اطاعتمونم هم همینطور اگر در اطاعتمون خداوند را یکتا قرار ندادی میشیم مشرک همونطور که همونطور که نصارا کافر شدن با اطاعتشون از علمای خودشون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من من دون الله علماشون رهبانشون کشیشهاشون را ارباب غیر رب قرار دادن پروردگار چطور وقتی که اومیدن در حلال و حرام از اونها اطاعت عدیب نحاتمت های اومد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود گفت که رسول الله ما پروردگارشون قرار ندادیم چون اصفات پروردگار اینی که دستور بده و ماها اطاعت بکنیم این اصفات پروردگاره دستور بده و ما من اجابت بکنیم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین بعدی آیا علماتون اگر یک چیزی که خدا حلال کرده بود حرام میکردن شما حرامش نمیکردید؟ گف آره، گفت این عبادت اونها هست خدا حلال کرده اونها حرام بکنن شما اطاعت از اونا بکنید خیر نباید رو حرف خدا حرف بزنید باید از الله فقط الله یکتا فقط اطاعت بکنید اگر گفت حرامه چش حرامه این اطاعت فرمونداری هست اما اگر انسان به خودش بگه که نه من میتونم رو حرف خدا من حرف بزنم من ملزم به دین خدا نیستم به شرع خدا نیستم من لازمش این نیست که بیام مشروب نخورم من مسلمان میشم ولی مشروب میخورم و خداوند گفته برای مسلمانان پیشین خیر این خلاف توشیده وقتی که خدا را یک تا قرار دارید باید حرف خداباندم بپذیریم. بله باید در عبادتمون و در اطاعتمون خدا را یکتا قرار بدیم. روی حرف خدا حرف نزنیم. همچنین در اعمال قلبی بحث محبت بحث جاب و امیده بحث ترس از خدا بنده، این اعمال قلبی و بحث استعانت هم همینطور کمک گرفتن که قسمتش بحث در بحث دعا وارد میشه. یا که نعبود و یا که نستعین جسده خدا از کسی دیگر کمک نمیگیریم. اون جایی که کسی نمیتونه. ما در, در جلسه قبل در بحث اون کسانی که در کشتی میخوان غرق بشن جز خدا کسی دیگر صدا نمیزنن. این استعانت فقط به خداست در جایی که کسی مخلوقی نمیتونه به داد داد اونها برسه مخلوق و بنده نمیتونه از زیر خواب بیرون بیاد همونطور که گفتیم و توضیحش دادیم. در اعمال قلبی هم همینطور در ترس از خداوند نباید شریک خدا قرار بدیم نباید در اون عبادتی که برمیگرده خداوند ازمون خواسته برای خودش انجام بدیم و دستور بهمون همون می بده میده نباید از کسی دیگر جز خدا بترسیم یعنی مثلا بالفرض وقتی که خداوند میگه که نماز بخونید دیگه ترس نگه که من نه بنده نذاشته فلانی نذاشته من ترسیدم از معلمی از پدری که نماز نخوندم اینجا دیگه عصری نیست از تخشاون ناس آیا از مردم میترسید؟ نه نباید ترسی از جز ترسی از خداوند داشته باشیم بله یک ترس داریم ترس طبیعیه انسان می ترسه، از شیر میترسه از افتادن از بالای آپارتمان میترسه. ترسه. این ترس طبیعیه، بحث ترس طبیعی بحثش نیست. بحثمون ترس عبادته. بحث ترس قلبی هست. که انسان در قلب خودش از خداون بترسه، از قدرتش بترسه، در قلب خودش این چین اعتقادی داشته باشه به خداون. خداون را تاری تعظیم بکنه، یعنی تاری خداون بزرگ بشه که دیگه از کسی جز خداون نترسه و امیدش به کسی جز خداوند نداشته باشه یعنی اون ایمان قلبیش باور قلبیش تاری به جایی برسه که فقط امیدش و تمعش به خداوند باشه که فقط خدافند که فریاد رسش هست خدافند که فقط ارحم و هست بله اعمال قلبی زیاده آخرین مطلبی که الان میتونیم بهش اشاره بکنیم از اعمال قلبی از های قلبی که ما باید خداوند را یک تا قرارش بریم بحث محبت همو طور که خداوند در قرآن از مشرکی میگوید و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله مشرکین برای خدا شریک قرار دادن اون شریکاشونو مثل خدا محبتش داشتن و الذين امنوا اشد حبا لله مؤمن حبش نسبت به الله شدید شدیدتره یعنی هیچ وقت نمیاد خدای خودش را آذده خاطر بکنه خدای خودش را برنجونه به خاطر چی به خاطر اینکه محبوبش پدر و مادرش سرحت نشن خیر انسان ایمان نداره تا اینکه معصیت خالق نکنه در آن چیزی که رضایت بنده هست. لا طاعه مخلوق فی معصيه الخالق ان چیزی که معصیت خالقه نه انسان اطاعت بکنه نه محبتش نست به اونها سبب بشه حرف خدا رو زیر پا بذاره محبت خدا داره دوست داره نماز بخونه کره نماز نداره بغض نماز رو نداره بغض روزه و بغض زکات رو نداره اینها درسته زکات یک عبادتی هست عبادت بدنی هست عبادت مالی هست که انجام میده زکات روزه ولی که از جهتی متعلق به قلب، انسان باید قلبنم دوست داشته باشه و اینها را باید دوست داشته باشه که برای خدا انجام بده چون خدا از من خواسته چون خدا دوست داره پس منم دوست دارم پس خلاصه بحث الانمون اینی که خداوند را یکتا قرار بدیم در عبادتمون عبادت بدنی دعای عبادت و دعای مسئلات در اون دعای گفتاری و در اون اعمال قلبی خدا را یکتا قرار بدیم و کسی در این مسائل با خداوند شریک شریقه را که بحث مفصل اینه، این, این خلاصه بود آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صل الله على محمد و على محمد